هشتومین داره جلسات علمی فکری و اصلاحی سال 1400. اجرا و ضبط مرکز علوم قرآنی سوران. بسم الله الرحمن الرحیم گروه سرود نبی رحمت از مرکز علوم قرآنی سوران تقدیم می نماید. اعوض <تصفيق> بالله من الشیطان قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوْ فُرْوَعِيمِ صَدَبَ اللَّهُ الْعَظِيمِ دل در طلبش منتفد وغنب نالان زبیع دلدار دل دل محمد نالن زبیع ان دلدار دل دل محمد دلدار طلبش می تا پداقم دلدار محمد گربل بولی آواز بخواند سریشی یعنی نبی خالق جبران یانی نبی خالق جبار محمد خورشید فلک چشمه گلزار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد, محمد مجدد هد ز بادت وحدت طلب في لسان محمد وحدت طلب في لسان محمد خوشيد فلك چشمي گلزار محمد آرامش جان راحت رخصار محمد آرامش جان راحه قطن تو گل صفاتش سرینی این بس که بومت مظهر ایثار محمد این بس که بومت مظهر ایثار محمد هر قلب بر ایلا بی گل به جهان غص پر از فر مقاف به جهان یک گل بیغار محمد خورشید فلک چشمای گلزار محمد آرامش جن راحت رخصار محمد آرامش جن راحت رخصار محمد آرامش جن راحت رخصار محمد, محمد اجمان صلوه